بختیار قسمت سوم. خب تا اینجای داستان گفتیم که زرنگار یک روز و دو روز و ده روز و بیست روز در انتظار بختیار به سر برد روز چهلم هم رسید و بختیار پیداش نشد زرنگار اینطور با خودش فکر کرد که معلوم میشه که گل قهقه اون رو مفتون خودش کرده دیگه نمیتونه از گلستان ارم بیرون بیاد زرنگار چشمها رو روی هم گذاشت دعای معجز نما رو خوند و همین که خوند در یک آن در داخل گلستان ارم حاضر شد نگاه کرد و دید همونطوری که فکر کرده بود قهقهه با دختران در چمنزار مشغول پایکوبی بودن و بختیار چشمهای خودش رو به اون دوخته بود و مفتون اون شده بود شادی در باغ خوک فرما بود دخترای زیبا میخندیدن. گل قهقهه هم از لباش مثل بارون قنچهٔ گل بر زمین میریخت و همه ای زمین را انگار که با قالیهای معطر فرش کرد دخترای زیبا به اون رو کردند و گفتند زرنگار بیا با ما به پایکوبی زرنگار در جواب گفت من حوصله ندارم بعد در یک آن به یک کبوتر تبدیل شد و بختیار رو به چوبی تبدیل کرد و با اون از گلستان ارم به پرواز در اومد گلی رو هم با خودش برداشت و به منقارش گرفت و میبرد وقتی که به منزل رسیدن دوباره به شکل اولش درآمد کبوتر تبدیل به زرنگار زیبا و چوب به بختیار تبدیل شد. همین که بختیار پا به آستانه ی خونه گذاشت، فکر کرد و به خاطر آورد که ایداد بیداد. با دست خالی برگشته. بختیار فکر میکرد، شاید تا غروب آفتاب بتونم گلی به دست بیارم. این بود که فوراً از خونه بیرون اومد و چشمهای خودش رو روی هم گذاشت. ولی به محض اینکه حرفای اول دعای معجزه نما خوند، فورا زرنگار پشت اون دوید و دستش رو گرفت و گفت: بختیار، تو چی فکر کردی؟ به خونه برگشت. ببین چه چیزی تهیه کردم و توی خونه برات گذاشتم. بختیار بدون میل به خونه برگشت. دید و باور نکرد. باور نکرد که گلی از گلستان ارم روی تاق است زنبون گفت، بختیار، فرصت رو از دست نده، گل رو بردار و هرچه زودتر پیش پادشاه برو، مهلت چهل روزه ای تو سر رسیده. بختیار، گل رو گرفت و فوراً به قصر شاه روانه شد. پادشاه از تعجب چشمای خودش رو باز کرد و گفت، بحبخ، بختیار، به سلامتی و خوشی برای من گل آوردی؟ چه خوشبختی، چه موفقیتی پادشاه بختیار رو بغل کرد ولی فکر میکرد این چه بدبختیه، این چه بلاییه، چطوریم از وجود اون خلاص بشم بختیار هنوز قصر رو ترک نکرده بود که پادشاه دوباره وزیر رو به نزد خودش تلبید و با گریه گفت وزیر چه کار باید کرد؟ اگه اون رو به جهنم روونه کنی یا به طبقه هفتم زمینم بفرستی زنده برمیگرده وزیر فکر بکن والله جگرم داره میسوزه وزیر دیگه نمیتونست کاری بکنه یک ساعت دو ساعت تو افکار خودش غرق شد بالاخره رو سر خودش کوبید و فکری به سرش زد و گفت الا حسرتو به بختیار امر کن که به اون دنیا بره از پدر و مادر تو خبر بیاره این راه خوبیه چون تا حالا دیده نشده که کسی به اون دنیا بره و دوباره به این دنیا برگرده. شاه فکر وزیر رو پسندید و فرستاد دنبال بختیار. همین که بختیار حاضر شد گفت بختیار دوست من. من باز هم به کمک تو احتیاج دارم. مدتی که من پدر و مادرم را ندیدم یعنی از روزی که اونا مردن فوقالعاده براشون دلتنگم. از تو خواهش میکنم که به اون دنیا بری و خبری از احوال و سلامتی پدر و مادرم برام بیاری. بختیار گفت، پادشاها، عادل باش. تو امر محالی رو به من میکنی و فرمانی میدی که ممکن نیست اجرا بشه. شاه در جواب گفت، گوش کن، من چیزی نمیخوام، چهل روز به تو مخلط میدم. اگر خودت راهی به اون دنیا پیدا نکنی، اون وقت، جلاد من به تو کمک میکنه. اینو در نظر داشته باش. بختیار به منزل برگشت. زنش اون رو نشناخت که آیا این بختیاری یا بختیار نیست و بون گفت ای بختیار چرا مثل مرده ها شدی؟ بختیار جواب داد در واقع من مردم. اگرچه هنوز نمردم اما شاه به من امر کرده که به اون دنیا برم و خبری از احوال پدر و مادرش بیارم. چطور میتونم این امر را اجرا کنم؟ شخص زنده رو به اون دنیا راهی نیست و مرده هم به این دنیا بر نمی گرده. زرنگار گفت این مصیبت تو رو میشه چاره کرد برو به شاه بگو هیزم زیادی رو در میدون جمع کنه و نفت زیادی روی اون بریزه. اون وقت بالای اون برو و امر کن که اون رو آتیش بزنن. همین که نفت آتش گرفت دود اون تو رو احاطه میکنه و تو از نظر ناپدید میشی. در اون وقت من به شکل کبوتر میام و تو رو به چوبی می میکنم و از میان آتیش سالم به در میبرمت. هیچ بین فکر نباش که بعد چی میشه. خودت میبینی که من با شاه چه معامله ای. وقتی یار از شادی شادی به رقص در اومد. در همون ساعت پیش شاه رفت و گفت پادشاه به سلامت باشه. امر کن که در میدان هیزم زیادی روی هم بچنن و صد خمره نفت روی اون بریزن. اون وقت من بالای اون میرم و وقتی که هیزم ها رو آتش زدن شوله اونها من رو به آسمون میبره و به اون دنیا رحصه کار فقط از هیزم مزایقه نکن تا شوله پرزوری داشته باشه. شاه در جواب گفت دوست عزیز من این چه حرفیه مگه من از هیزم مزایقه میکنم این کار برای منم بهتره شاه فوراً امر کرد که هیزم زیادی در میدون روی هم بچینن و آتیش بزنن تا که استخونهای بختیار هم بسوزه و اثری از اون باقی نمونه. خلاصه به امر شاه کوهی از هیزم در میدون جمعوری کردن و بختیار بالای اون رفت و فریاد کشید. زود آتیش بزنین. من باید به اون دنیا برم. شاه در جواب گفت سفر به خیر. و با دست خودش هیزم ها را آتیش زد. وزیر و سلمانی شاه مشغول نفت ریختن شدن و به بختیار گفتن که از پدر و مادر ما هم خبری برای ما بیار و سلام ما رو به اونها برسون در اون موقع شعله فروزان دود اون رو اطرافش رو و همه گوشه و کنارهای بدنش رو گرفت. هیز ها رو گرفت و دود مثل یک ستون بالا رفت و بختیار رو از دیده ناپدید کرد. زرنگار فرصت را از دست نداد. فورا به شکل کبوتر در و بختیار رو هم به چوب تبدیل کرد و سالم از بین آتیش فرار کردن و رفتند. شاه و وزیر تمام شب رو تا صبح به خواب نرفتن و متصل نفت و هیزم به آتش میریختن. شاه و وزیر رو پهلوی آتیش ها بذاریم و بریم ببینیم تو خونه بختیار چه خبره. بختیار تا صبح با زن خود شادی و پایکوبی کرد و سی و نه شبان روز مهمونی داد و تو شادی و خوشی غرق بود. وقتی که روز چهلم رسید زرنگار خانم گفت زنده بادشاه از لطف او ما بد نگذروندیم. حالا موقعش رسیدی که اون رو هم شاد کنیم. چون شاه منتظری که از پدر و مادرش خبری بهش برسه. بزارونم به آرزوش برسه. اون وقت، عجب بلند شد و پارچه آورده روی او نوشت. روی تو سیاه باده ای پسر من. چشمهای تو کور باد. تو بختیار را نزد ما فرستادی اما خودت تنبلی کردی بیایی. وای بر فرزندی که پدر و مادر خود را فراموش کند. وای بر شاخهی که ریشه خود را فراموش کند. تازوده است لعنت ما را از سر خود دور کن و نزد ما بیا، تا آنکه از دیدن تو شاد شویم. در زیر اون نامه اسامی آبا و اجداد شاه رو تا هفت پشتش ذکر کرد و امضا کرد بعدا همین نهر نامهی خطاب به وزیر نوشت سلمانی رو هم فراموش نکرد و دعوتی برای مسافرت به اون دنیا برای اون هم نوشت زرنگار هر نامه رو در خرجن بختیار گذاشت و قبل از طولوی آفتاب اختیار ها رو به میدون شهر برد و بین خاکسترها قرار داد. چشماش رو بست و از سر تا پا اون رو در خاکستر فرو کرد. صبح همین که شاه از خواب بیدار شد وزیر و سلمانی خودش رو به حضور طلبید هر به میدون رفتن بیلها رو به دست گرفتن و در بین خاکسترها به جستجو پرداختن تا ببینن از اون خیرمن آتش چه اثری باقی مونده. خاکسترها رو به این طرف و اون طرف پراکنده می تا مردم ببینند که از بختیار هیچ اثری باقی نمونده و از اون دنیا برنگشته. نگشته وقتی که به وسط خاکسترها رسیدند دیدند چیزی خود به خود به حرکت اومد و خاکستر از روش می ریزه نگهان بختیار از وسط خاکسترها پیدا شد سر و صورت و بدن بختیار پر از خاکستر بختیار خاکسترها رو از بدن خودش تکون داد و به شاه اینطور گفتیه. شاه باد. خیلی عجله می کردم و می ترسیدم به موقع نرسم و خاطر مبارک رو آسوده نکنم. خیلی از شما راضی و خوشنودم که به استقبال من اومدین و راه رو برای بیرون اومدن من پاک کردیم. من امر شما رو اجرا کردم. پدر و مادر شما رو دیدم و سلام رسوندم. اونها سالمند و خونه هم تو باغ بهشت دارن. وقتی که بیوون اونها وارد میشین، از یک طرف دریاچه شیر و از طرف دیگر رودخونه اثر دیده میشه. از هر حیث نارهتن، ولی قذب شاه از من دور باد. اونها از شما رنجیدن. وزیر سوال کرد، والدین من رو هم ملاقات کردی؟ وقتیار گفت، البته. هم والدین تو و هم والدین سلمانی رو دیدم. همینطور که شما در اینجا به خدمت شاه مشغول هستین، اونها هم در اونجا به خدمت پدر پادشاه مشغوله. هست. نامی از اونها براتون آوردم. در این موقع، هر سه نامر از جیب خودش در آورد و به اونها داد. وقتی که شاه نامه خودش رو خوند، تا بیخ گوشش سرخ شد. وزیر هم وقتی نامه خودش رو خوند، مثل آتی شعله شد. چهرش تا بن موها مثل خون شد و همینطور سلمانی. هر سه نامه ها رو خوندن و از خجالت نمیتونستم به روی همدیگه نگاه کنن. بالاخره شاه گفت بختیار برای این که من به اون دنیا برم چقدر هیزم لازمه. وزیر گفت من هممایلم والدین خودم رو ملاقات کنم. سلمانی گفت منم هم همراه خودتون ببرین. بختیار گفت برای هر سه شما هیزم زیادی لازمه. کمتر از 500 بار هیزم کفایت نمیکنه. شاه فوراً امر کرد پانست بار هیزم در میدان حاضر کنن. بعد با وزیر و سلمانی خود در بالای هیزم ها رفت و امر کرد که از هر چهار طرف هیزم ها را آتیش بزنند. آتش پی که شعله زد و شاه و همراهاش رو به اون دنیا رهسپار پار کرد. ملت هم بختیار رو به شاهی انتخاب کردند. بختیار چنان به ادالت پادشاهی میکرد که مردم میگفتند چرا زودتر با این کارا نکردیم؟ کاش زودتر به این کار اقدام میکردیم. بختیار پادشاه شد و زن اون در بین دختران زیبا از همه قشنگتر و قصر او هم از همه عالیتر و باشگوهتر بود. اون به آرزوی خودش رسید چیزی رو که در خواب هم ندیده بود در بیداری دید اما خواب بختیار تحقق پیدا نکرد بختیار نمیدونست چجوری به دنبال خواب خودش بره چون تمام گله خودش رو در عوض خواب تده بود و اسم خودش رو هم عوض کرده بود بی جهت نیست که میگن اونجا که چیزی رو جستجو میکنی در اونجا هیچ چیز نصیبت نمیشه بلکه در جایی که هیچ انتظارش رو نداری، اون چیز رو پیدا می کنی که دنبالشی. بعد از ظهر روزی، بختیار از دربار برگشت و وارد اتاق استراحت زرنگار شد. دید که اون به خواب سنگینی فرو رفته. اونو بیدار نکرد و همانطور که پیشترها به عادت چوبپانی لباس می پوشید، لباس شاهانه رو درآورد آورد و لباسهای کهنش رو پوشید و روی زمین دراز کشید. پاهای خودش رو به چونش نزدیک کرد، سرش رو به شونه هاش فرو برد و به خواب راحت و خوشی رفت. بسطه های شب بود که زرنگار بیدار شد دید که شخص غریبی توی اتاقش خوابیده غلامهاش رو بیدار کرد و همه به اون شخص غریب نگاه می کردند و نمی دونستن چه کار باید بکنن. آیا باید اون رو بکشن یا اینکه دنبال پاسبون ها برن. یک دفعه زرنگار خانم گفت ای امان این خود بختیاره من میدونم قبلا اون چوپانی میکرده اون عادت داره اینطور بخوابه شماها برین من پهلوش میمونم و مراقب خوابشم خلاصه رفتن زرنگار پهلوی بختیار نشست مراقب خواب اون شد نصف شب بختیار بیدار شد به زرنگار نگاهی کرد و به چشمهاش خیره شد بعد از اون دو مرتبه چشم‌های خود رو بست و باز کرد و مجددا نگاه کرد و خندید. زن نگار زیبا نفهمید چرا شوهر اون اینطور شادی میکنه. پس بورید. بختیار چی شده؟ چرا به من نگاه میکنیم و میخندی؟ بختیار جواب داد. خندی من علتی داره. من برای این که بل خوابی رو که از پیر مرد خریده بودم عملی شد. اون خواب خواب ساده ای نبود. اون در خواب دیده بود که وسط شب آفتاب طلوع کرده و روی سر اون میتابه. مردم میگن این امر محاله اما عملی شده و تو زرنگارخانو برای من مثل آفتابی. بدون که اسم من بختیار نیست این اسم رو من با خواب خریدم. اسم حقیقی من ملک محمده. بختیار خواب خودش رو پیدا کرد. قصه ما به خور رسید. از آسمون سه تا سیب به زمین افتاد. یکی برای من، یکی برای تو، و سه برای کسی که قصه رو حکایت کرد.